این داستان زارع خردپا یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون روزگاری تعدادی کشاورز که غیر از یه نفرشون بقیه ثروتمند بودند در یه روستا زندگی میکردند. اونی که ثروتمند نبود و زارع خردپا نامیدند اون گاو نداشت پولی هم در بساط نداشت که بتونه گاوی بخره اما اونو همسرش آرزو داشتن صاحب یک گاو بشن یکی از روزها مرد به همسرش گفت فکری به سرم زد پدر تو پیکر تراشه. بیا ازش بخوایم از چوب یه گوساله برامون بتراشه و رنگ قهوه‌ای بهش بزنه طوری که مثل گوساله طبیعی جلوه کنه خدا رو چه دیدی شاید این گوساله چوبی هم به مرور زمان رشد کرد و گاو شد همسرش از این فکر استقبال کرد. پیکر تراشم تق مل اونها، پیکره گوساله رو تراش داد و رنگ زد و سرش رو طوری درست کرد که انگار خم شده و سرگرم چریدنه. صبح روز بعد که چوپان ده گاوها رو به چراگاه می برد، زار خورده پا اونو صدا زد و گفت: من گوساله کوچیکی دارم که باید به چراگاه بره. ولی گوساله من خیلی کوچیکه. باید اونو زیر بغلت بگیری و با خودت ببریش چوپان گفت باشه بعد گوساله رو بغل کرد و را افتاد به مرتح که رسید اونو در بین علفا پایین گذاشت گوساله تمام روز سرش پایین بود درست مثل اینکه در حال چریدن باشه چوپان گفت چه اشتهایی داره خیلی زود بزرگ میشه و میتونه به تنهایی این طرف و اون طرف بره قروب وقتی چوپان میخواست گله رو به خونه برگردونه به گوساله گفت تو که میتونی روی پای خودت وایسی و رفع گرسنگی نگی کنی حتما میتونی با چهار تا پای خودت هم به خونه برگردی پس لازم نیست تو رو بغل کنم زار خورده پا جلوه در خونش ایستاد و منتظر گوسالش بود وقتی چوپان گله رو از وسط ده میگذروند زار سراغ گوسالش رو گرفت چوپانم جواب داد گوساله تو هنوز زاره علف میخوره هرچی بهش گفتم بیا به حرفم گوش نکرد. زاره سرش داد زد و گفت تو باید گوسالم به هم برگردونی. اون دوتا راه افتادن و به طرف مرتع رفتند. گوساله سر جاش نبود. کسی اونو دزدیده بود. چوبان گفت شاید فرار کرده. زاره جواب داد نه امکان نداره. زاره یقه چوپان رو گرفت و کشون کشون اونو نزد کت خدای ده برد. به چوپان دستور داده شد که در ازای گوساله یک گاو به زاره بده. زاره و همسرش سرانجام به آرزوی دیرینشون رسیدن و خیلی خوشحال شدند. ولی بعد از مدتی چون علوفه کافی نداشتند که به گاو بدند مجبور شدن اونو بکشند. گوشت گاو و نمک سود کردن و پوستشو به شهر مجاور بردن تا با پولش یک گوساله کوچک بخرند. زار خورده پا سر راه وقتی از کنار یک آسیاب میگذشت کلاقی رو دید که بالش شکسته بود. از روی دلسوزی کلاق و برداشت و با پوستی که به همراه داشت اونو پوشوند. ولی هوا نامساعد بود و طوفان باد و بارون مانع این میشد که به راهش ادامه بده. زار مجبور شد به آسیاب برگرده و خواهش کنه و بهش بدن. همسر آسیابان که تنها بود به زاره گفت روی اون کاها بخواب، کمی نان و پنیرم بهش داد. زار نان و پنیر رو خورد و کنار پوست خودش دراز کشید. همسر آسیابان خیال کرد زاره خوابش برده. چند لحظه بعد مردی وارد شد و زن آسیابان با ادب و تشریفات به سقبال اون رفت. زاره از اینکه زن اونو به اون اندازه تحویل نگرفته بود دلخور شد. زن آسیابان برای پذیرایی از اون چندتا بشقاب غذا از گوشت کباب گرفته تا سالاد و نوشیدنی از انبار آورد و روی میزچید. همین که نشستند بخوردن کسی در زد. زن سراسیمه کباب و در اجاق گذاشت و نوشیدنی و زیر بالش گذاشت و سالاد و روی تخت خواب و گوشت و زیر تخت مخفی کرد. مهمانو هم در کمد پنهان کرد که لباساشو در اونجا میذاشت. بعد بالاخره در رو باز کرد و شوهرش داخل شد. زن رو کرد به شوهرش و گفت خدا رو شکر که برگشتی دیدی هوا چقدر منقلب شده انگار دنیا داره به آخر میرسه. آسیابان به مردی که روی کاها خوابیده بود اشاره کرد و پرسید این اینجا چیکار میکنه؟ زن جواب داد اون مرد فقیر و بیچاره که در باد و بوران گرفتار شده بود و با التماس از من جایی برای خوابیدن خواست منم نون و پنیری بهش دادم و گذاشتم روی کاها بخوابه مرد گفت که حرفی نداره ولی چون گرسنه است باید زود یه چیزی بخوره زن گفت که غیر از نون و پنیر چیز دیگه ای ندارن. شوهرش گفت اشکالی نداره و رفت از زاره هم خواست تا بیاد و باش چیزی بخوره. زاره که انگار منتظر چنین موقعیتی بود بلافاصله فاصله بلند شد تا در خوردن نون و پنیر با آسیابان همراه بشه. همون موقع آسیابان متوجه پوست و کلاغ روی اون شد و سوال کرد اونا چیه؟ زاره جواب داد این یه پرنده حقیقت گوه. آسیابان پرسید آیا به منم میتونه حقیقت رو بگه؟ زاره جواب داد چرا نتونه؟ ولی اون فقط چهار نکتر رو میگه و پنجمی رو برای خودش نگه میداره. آسیابان خیلی کنجکاف شد. دلش میخواست هرچه زودتر حرف زدن کلاق و بشنوه. زاره سر کلاق کمی فشار داد و کلاق قارقار قار کرد. آسیابان پرسید چی گفت؟ زاره گفت میگه اولین نشانه حقیقت یک بطری نوشیدنیه که زیر بالشه. آسیابان رفت و بالش و برداشت و دید که گفته کلاق حقیقت داره. آسیابان گفت ادامه بده. زار دوباره سر کلاق رو گرفت و کلاق شروع به قارار کرد. بعد گفت دومین نشانه حقیقت کبابیه که توی اجاقه آسیابان با ناراحتی به سمت اجاق رفت و کباب کبابو درآورد با قارقار بعدی کلاغ زاره گفت سومین نشونه حقیقت اینه که سالاد روی تخت خابه آسیابان در حالی که میرفت تا سالاد و بیاره فریاد زد چه نشونه مهمی نشانه بعدی هم گوشتی بود که آسیابان اونا از زیر تخت درآورد. آسیابان و زاره پشت میز نشستند. اما زن آسیابان که دلش مثل سیر و سرکه میجوشید همه رو برداشت و رفت که بخوابه. آسیابان سخت کنجکاف شد و دلواپس پنجمین نکته این حقیقت بود. ولی زاره بهش گفت اول بیا این چیزایی رو که کشف کردیم با هم بخوریم. این حقیقت آخری واقعا وحشتناکه بعد از اینکه اون اون دوتا با هم نشستن و غذاها رو خوردن و تموم کردند آسیابان شروع کرد به صحبت تا سر پنجمین نکته با هم به توافق برسند بالاخره زاره موافقت کرد 300 دینار بگیره و پنجمین نکته رو هم برملا کنه او بار دیگه کلاغ و وادار کرد قارقار کنه وقتی هم که آسیابان پرسید چی گفت، زار جواب داد اون میگه یه روح خبیز در گنج پنهان شده که پر از لباسهای کتانیه. آسیابان گفت این روح خبیز باید از اونجا خارج بشه. بعد هم سعی کرد در کمدو باز کنه ولی در قفل بود. زن مجبور شد کلید رو بذاره بده تا در رو باز کنه. با باز شدن در مهمان ناخوانده سریع فرار کرد. آسیابان گفت ای وای اون روح خبیز فرار کرد. بعد از این ماجرا همه گیر رفتند و خوابیدند. صبح دم زاره بیدار شد. سیصد دینار رو برداشت و از اونجا رفت. زار به زادگاه خودش برگشت. اون با این پولی که به دست آورده بود، دیگه حسابی ثروتمند شده بود و تونست خونه خوبی برای خودش بسازه. هم ولایت یاش می زاره خورده پا حتما گنجی پیدا کرده. اونقدر از این حرفا زدن تا بالاخره اونو وادار کردن که نزد کت خدا بیاد تا راز ثروتمند شدنشو برملا کنه. زاره ناچار گفت من پوست گاوم و 300 دینار فروختم. همین که کشاورزا این خبرو شنیدند، همه به تک افتادند که چنین سودی رو از دست ندن. به خونه هاشون رفتن و گاواشون رو کشتند، پوستشون رو کندن و به همون شهری بردن که زاره گفته بود. تد خدا فکر کرد بهتر اول دختر اون دوماله این کار بگیره. وقتی دختر نزد بازرگان پوست فروش رفت، بازرگان فقط سه دینار داد و پوست و خرید، بقیه بعد از دختر کت وارد شهر شدند تا پوستای خودشون رو بفروشند. ولی بازرگان حتی حاضر نشد به اونا سه دینارم بده. چون میگفت با این همه پوست که وارد بازار شده کاری نمیتونم بکنم. کشاورزا که گاوهاشونو رو کشته بودند و پوست گاو روی دستشون مونده بود از دست زاره خورده پا سخت ناراحت شدن و رفتند به کت خدا شکایت کردند. زار خورده پا به اتفاق آرا محکوم به مرگ شد. باید اونو در یک بشکه پر از سوراخ میگذاشتن و در دریا رهاش میکردند. روسایا مردی رو معمور کردند که آخرین دعا رو برای اون بخونه و طلب آمرزش کنه. تا بعد اونا بشکه رو به دریا بندازند. زاره دید که اون همون مهمون ناخوانده خونه آسیابانه. بهش گفت: من یه بار زندگی تو رو نجات دادم. وقتی که گذاشتم از گنجه خونه آسیابان فرار کنی و جان سالم به در ببری. حالا نوبت توه که منو نجات بدی و از شر این بشک خلاصم کنی. در همون لحظه چوپانی با یک گله بزرگ از اون نزدیکی عبور می کرد. زاره میدونست می که این چوپان سالهاست دلش می خواد کت خدا بشه. بنابراین با تمام وجود فریاد زد نه من این کار نمی کنم اگه همه دنیا رو هم به من بدن حاضر نیستم اصلا قبول ندارم وقتی چوپان این سر و صداها رو شنید اومد و پرسید چه خبره نمی چی بشه چه چیزی رو قبول نداری زاره خورد پا جواب داد اگه برم توی این بشکه منو به مقام کت خدایی می رسونن. ولی من نمی خوام این کار بکنم چوپان این حرفو که شنید گفت اگه کت خدا شدن غیر از این شرط دیگه این نداره من حاضرم جور تو رو بکشم و برم توی بشکه. زاره در حالی که از بشکه بیرون می آمد گفت نه نه غیر از این شرطی نداره خدا پدرتو بیا مرزه. چوبان در بشکه جا گرفت و زاره سر بشکه رو میخ کرد. بعد گوسفندان چوپان رو جلو انداخت و برد. اون مرد دعاگو هم به ده برگشت و گفت دعا خانده شده. جمعیت به طرف بشکه رفتن و اونو به سمت آب هل دادند. چوپان از داخل بشکه فریاد میزد. این حق منه که به مقام کت خدایی برسم. اطرافیان که فکر میکردند این همون خورده پاس جواب دادند. بله واقعا حق با شماست. منطقه اول باید ته آب بری. بعد بشگر رو به دریا انداختند. خیال شاکیان راحت شد و به خونه هاشون برگشتند. ولی وقتی وارد ده شدند دیدند زاره خورده پا شاد و خوررم با یک گله گوسفند به خونش برمیگرده. اونا از تعجب شاخ درآوردن و ازش پرسیدن چطور از دریا جون سالم به در بردی؟ زاره جواب داد بعد از سقوط به ته دریا رفتم. در اونجا سر بشکر رو باز کردم و بیرون اومدم. اونجا مرتعی زیبا دیدم تا چشم کار میکرد، مرتع پر از بره و گوسفند بود که در اونجا میچریدند. منم اینا رو سوا کردم و آوردم. کشاورزان پرسیدند: باز هم از این گله ها بود؟ زار خوردپا جواب داد تا دلتون بخواد. همه کشاورزان تصمیم گرفتن برن و یک گله گوسفند برای خودشون دست و پا کنند. در این میان کت خدا گفت اول باید من برم. روز آفتابی و زیبایی بود و چند تکه عبر پنبهی در آسمون آبی دیده میشد. تصویر این عبرها که در دریا منعکس شده بود شبیه یک گله گوسفند به نظر می رسید. همگی به طرف دریا رفتند. یکی از کشاورزان به دیگری گفت از حالا دارم گوسفندا رو ته آب می بینم. کَت خدا که جلوتر از همه ایستاده و قبراغ و سرحال بود گفت اول من میرم و سر گوشی آب میدم اگه جاش خوب بود شماها رو صدا میکنم با گفتن این حرف داخل آب پرید از سر و صدای ناشی از تصادم بدن او به آب بقیه فکر کردند که میگه دنبال من بیاین برای همین یکی پس از دیگری با عجله داخل آب پریدند به این ترتیب دهکده از کشاورزان بزرگ خالی شد و اون چه باقی مونده بود به دست زارع خرد پا افتاد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی